الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعب الدائم على الاف أجمعين اللهم صل وجميع جميع المشرفين وارحمنا برحمتك يا رب از خدمتون که یک مجموعه از این قوم و کارها و مادی بوده که در جاهلیت هم ورس بوده و انسان هم ضبط خیلی مشکه یعنی اختصاص به اون زمان هم نداره. شما عمل میخواه می درن پسا که از که در وسط اتوب هستند دور از آبادی هستند کهیه کارهای خرافی، به شکرهای مختلفی بین اونها رواج داره یعنی این نگه امرو یه چیزی نیست که میگه امرو متعارفی باشه ما هم همینطور یعنی ماها هم الان در زمان خود وقت در صدر اسلام ادهی ای از این مسائل به شکرهای مختلفی وجود داشته که یکیش مثلا از بوده یکیش به اصطلاح کهنه و کاهن بودن و الاخره مطالب دیگری که بوده از خلیل که ما به مناسبت اینکه مقداری که مرموم شیخ انصاری از این حالات متعرض شدن یکی تنجیم روزیشون متعرض شدن که ما متعرض شدیم مفصلن مثلای نجوم و عمل به نجوم و تنجیم و موجه که متعرض شدیم و مخصوصا گفتیم در میان شیوه‌ای تحولی هم در این مسئله پیدا میشه یعنی مثل مرحوم سید مرتضا که تألم نجوم رو به اجماع حرام میدونه مرحوم بعد از ایشان به و 200 خوردهی کتابی راجع به نجوم هست می از میکنه قرن بکنه در دفاتر مرحوم فیما و عرض کردیم مثلا مجموعه ربایاتی که در کتاب سید نتابوس رحمه الله رسیده شاید پنج مقابل ربایی میشه روید ربایی که قبلا داشتیم تو نهجبه هست تو گلره هست این توضیحات میشه بوده و سید نتابوس تمایل رو پیدا میکنه که به یه مردار رو حق این نیست این نیفتی همش باطل باشه این تماییو سید نتابوس خب طبعا این همین دیور که دام رو که دام کنه یعنی این طور نیست این من قطعه باشه راجب به کتاب از جل محمون ما یه محضای صحبت کردیم نه مستقلا از کردن راجب به روایات که ایشون آورده از درات که ایشون در قرن شیشون آورده در کتاب از جل قبلا اصلا در کتاب از ما نبوده چون محمون سیدون تاووس مساده در دل ازیار دارشه که قبلی ها و ن و از چون که مرموم مجلسی در کتاب به ها تقریبا سعی میکنه کنه کلماتیشون رو نقض بکنه نقاضی بکنه یعنی مرموم مجلسی هم ولی که خود مرموم مجلسی هم علم نجوم صاحب یه هم صاحب خبرن سعی میکنن کنن رویات تنجیم رو رد بکنن از کردم، حتی مرموم نراغی هم که در نجوم ردیم کار کردن ایشون در مستند روی نجوم در استضاهای رویات بیرد که از خروع شعبه تشعبه امریازیست این نجوم غیر از اون نجوم هست دلست هم وقتش ایشون تابرن گذشت و مرحوم مجلسی در کتاب بهان رواست زیادی ازشون اوورده و نقادی کرده کلمات مرحومت تاوسه و معاصر ایشون مرحوم شیخ خور را آمدی نه اوورده شیخ خور را آمدی بیشتر رو رواستی اوورده رو که تحریم تعلام نجوم اتا عنوان با اوشانی بود با تقریم تردام داشت خود این توضیحات دادی پس یک دست که مغموش همساری هم قبردن راجع به کتاب به اصطلاح سیلو تاووز فراج و محنون بحش های مسترشناسی نستنن و اون هم فقط در حد شناختن نه تقییم و ارزیابی در این کتاب یه ویه از ما هست کتاب پای سیلو تاووز بخش خوبی کرده ای کاش این کارها رو خود مها ماها میکردی نه که به زیر یعودی ها کار انجام بده بخش های دگاهی حدیث و خود حدیث رو مرحوم علام انجام داده در ها اما بخش های کتاب شناسی رو در این کتاب کتابخانه سلطاووز خب به مناسبتی اون چیز در فرجم هست معرفی محلوم کرده این کتاب صرفا کرده فقط کتاب شناسی بکنه بگه. بحث درباره سند و انجام نذاره، خود کتب رو هم تری نکرده، ارزیابی نکرده. فرض کنید این کتاب فلان در اختیار سنتابوس شده. این کتاب ارزش داره، نداره سریع است، این قسمت‌ها رو نداره. اطلاعاتی های موجود شده ها که از همین مراجعی آورده، صاحب صاحب و صاحباً یک اشاره‌ای کرده نه آورده از اون جایی که وسائل کم آورده خب وسائلشون معناش اینه هر حدیثی که در یکی از کتب مشغول باشه حجیت میتونه احادیثی که اینطور نلگ اشاره دونه در دو, دو از کتب مشهور نیستن ولزا نقل نکرده این مبنای مرحوم صاحب ادله این راجع به نجوم که ذکر کردید البته بعد در فقه کسی معنوی روان معاصر ما، کسی روان این خوبی اینا به این معناست که نزون به حرمت ثابت نیست تا ببینید چه اثبات می‌شه. بعدش شک به بعد کفر مثلا میگه آلم و زمین و زمان رو فرض نجوم خارج، درو انکار کرده خداست الہات. مثلا میگی شک به بعد نفی خدا از صفات فعلی خدا، افعاد یعنی اصمان افعاد یعنی یکی از, از افعاد حلاقی رو نفتی بکنه و اما اگر اینها ها ترداشد این فیلنفت ها حرمت روشنی ندارده سفر فرانده این تو بحث نجوم گذشت و صحبت ها مجرده. بحث دومی که باز مرمون شیر در اینجا داره که به اینها میخوردن بحث سه به اول که این تا حاله ای سه چیزهای دیگری هم دارید ما در مجموعه روایات چه روایات رو رسول الله بحث به سه کنم همین روایاتی در واسه سه دارد اهل سنت روایاتشون در سه صحیح و صنده از سهر و شرف مقرونان اشتنه بود از سبب موقعات از شرف بله و سه روایات عبیق این پیشی ما آمده اما شما تنر جعیفه قابل عبود ما نیست این سنت شده هم جمعه بخاری با سر صحیب داره روایت سهر که از او استفاده میشه سهر به عنوانه حرامه لیکن یه اوز عباراتی بخوندیم از حسن بسری و از به اصطلاح صحیب و و دیگران که این بس مطرح شده از تمام عهد و تقریبا به استاد هم همین راه رو را را خلاستش اینه که سر به همانه از خود خرمت رو باید میکنه اون چیزی که درش مترتب میشه حساب بکنه مثلا سر که اینکه زمان برد روز بکنه این حرام سر روی که سر شده در سر رو زمان زید نمیشه این سر رو باطل کرد این جایی بذاره به این ویبود متعرض شده این بحث که به سهره که اینوزی بدا هم متعرض بوچه خیلی از عنوان بازه ما هناویر دیگری هم داریم به دردام مقاسب شعبدر شعبدر هم داره شعبدر ما در مجموعه هناویر فشلی خودمون برای حدث داریم دیگری هم داریم خیلی ها چه شهر یکی شب که تحریده یکیش تمامه، چون نرمشده که رسولان نها همه تمانمه یکیش توله است که این نوع, این نوع نوشتار بوده زنگی نوشتاره که شوهر رو بوده اینجا سرفه اون از سرفه یکیش دوله است این رو ما این نظامی توضیح دادیم یه نظامش هم عنابی مثل کاهن یا تفهان عنوان قادم داریم عنوان روغیه و راقی قادمی در هم کسی بوده که این دار رو برای که اثرش برداشت بشه. این روغیه رو از خود هم هکره هم نرده کردن حالا چون به اصلا من مخواهد متحدث روشن گلان نیخوند چون ممکنه کتاب بخاریم نیارم بعد در این روغیه ها رو بعد بعد از این رؤیاها از خود اینها هم به داره یکی از رؤیاها معروفه که چند تا رؤیا از یکی از معروف که ایشون باب رؤیت نبی هستن باب فرمودند در رقیه هم علمای همه سنت اختلاف کردن که مطلعا جایی زمان من جایی زمانی یا تفسیر بعد انصب که بود قال علا عرقی از سلم رما یرمی اسم فعالش هم راقی به معنی این. شعر خاصی هست که هست که خیلی رومی هم یا ای از سابیه علا این شعر دیگرم چند آقایی شدید داری است. این شما زبان فارسی رایجه همین شعر عرضی در کتاب در شعر یدید چپت هست و درکت و ناغل ها علایه هایی شعر بیز. اصل شعر مثل دوبومه. اصل شعرم به این صورته اندل مسمون انسا خود هم یدید به تریاغن ولا راقی. راقی در اینجا همونی رقیه ایست که اینجا هم از مصموم با اندید تریافتن ولا راجی از و ناول ها لایاری هستن اینه هستش من سم مصموم هم یعنی سم بدم داده شده تریافت نفسی یونانی برای کازه در فارسی مجموعه از عدویه رو درست میکردم در عدویه شما مصطبه خودتای دو مردنی بود که گیاهی بودم گیاهی هم مردنی هم رو میگیره سن رو از ذهن می کنه این استلاحا تریاغ یا حالا فارسی خود ما تریاغ روشنه این شیره به استلاح خشخاش تریاغی این ما به فارسی این روی چون ادعا میکنن که کسی که بیهیش میشه مثلا دواس پادزهر پادزهر زده سمومه اسمیش تریاغ روشنه اسمی تریاغی تریاغ تریاق یا که از یونانی اون به معنای زده سن ماده حیات وخشه زد بسن میگه من مصمومم نه پا هست و نه راضی هست که راقیه بخونه برای من دعا بخونه راه همونه که علایه هایی رسایی جام شبابی را بنداز این کسا به درمی میکنه علایه هایه. این راقیه که پیغمبر اکمت این بوده قاله دخل محبه نصف مالد دخل تا اندار رسایی رسایی رساییی و قاله سواله با همزه شکید من مریضم فقال حنس علاق عرقی که به رقیت رسول الله صلی الله علیه و آله قاله بلا قاله این رقیه میگم که بوده قیلت ها با خوندن هم دو اللهم رب بن این رقیه که ایشون نرم میخوند مذهب الباس باس البته صحیح ایش بحثه چون باقای حمزه در حالاتی تحتیل داده میشه بسوله علیه خونده مذهب الباس اشف, اشف انتش شافی لا شافی الا اند شفا ان لایغاز و صحبا وقت از آیشه نعره شده ان آیشه من نبی صلی اللہ علیه و الکانه یعنوید و بعد, بعد احله تعمیر و تربیه و روغین یکیه یمسه و به یده یمنا راست او و در او میذاشتن یا به سروق قول اللهم در وقت بر ناز که دل باز، و انت شافی لا شفا لا شفاک، شفاع، لا یغا و صبح. تایم که من تو هنمه توور اتتی نیست اما این در مسه ها هست و موصوب دیگری هم هست که بعدش در ات ماغوس خوندیم سن. این چون یک کتاب رو بری درمون بیارم از اینجا پرتون از اینجا بخونیم به اصلا متعرض داشیم یکی از روغیه های دیگه با رسول الله که اینم در رواست دیگری دی هم آمده یکی از رواست دیگه نه که فتکان یه قول بسم الله تربت و عرزنا بریقت و برزنا یشی سمیدنا این های اصطباقا روغیه می میکرمی روحیه اصطلاح نیم از کنیم مروم شیخ بخص روحیه نیم در ما علمای سنت دارم ما به همه را متعرض باشیم چون یک روایتش که ما در احل سنتی پیش ما هم آمده حالا اونجا متعرض باشیم پس انامین متعجبی رو ما در روایات احل سنت و احل بید داریم و از تنیمی روایت رو یک یکی موازی رو بررسی بکنیم تو نجومیت مداشت سه و تکران و کارن رو روحیه و نبیدونم از نشرف و تروله و هل آخری این اناقی اینو اینو حق باید وقت به سه مباطسی که از صدره اول تا حالا مطرح شده یک بحثش که خیلی معلومت این اینسا یا سه با عنوان حرامه یا به لحاظ آثار این دیموز خونده این وحثشو یه روز اجام داریم وحث دوم من از مسادر اهل سنت می که از همون قدیم روش بحث کردن اون وحثی که اهل سنت که از بحثایی که داره در این کتاب قطفل باری در شنر حدیث در صفحه سال این جلده زن و یورادو بییم اصلاح در اینجا نه مراد اصلاحا اصلاح در اصلاح در این محنانی استعمال نیستم سمت رو یوتلم و یورادو بییم علا آل <فتح> و یو ها ناسه برحمه اینجای کار میکنه و و صاهر. ل وله این دو تا ولاله تا رو فکر اونو معنای مالی فقط یه امر نظریه روا. و هوچند به یه حنی دواله کنه اونم و نقش و فرق اگر اگر در ذاته و تا رو به محسوسات تصویر سوره علا صورت محسور و تارا کنی اجمال امره اله حسی و محنهی راست دیم این،, این تقسیم بحث به ظاهریز این تحقیل نهایی نیزن با باز از امخازی که در باب شهر مطرح شده قیردین اخسام سه و طول فتر سه فقید و تخییل اونتقا ولا حقیقت در ببینید این بحث همون قدیل در دنیای اسلام محرح کده که آیا سر حقیقت داری یا نداره البته حالا من میخونم اقوال و بده توضیح هم خارجه محرز میکنن و حالا اختیار عبیجر پر استرابازی نه شاهریه و عبیفت راضی به نظر محطه بود و که آز این جساس بشتار کدار تفسیر قرآن منر هنفیه شونشون شون و ازداره این هم و نحظم ظاهری که سر حقیقت نداره و طایر قال نوری که از بزرگاه شافیه هاست با دو سفر. و صحیح ان الله هم. هم این است که سر حقیقت داره قطع الجمهور. الجمهور و قطع الجمعور جمهور علماء اهل سنت قادم بینید که قطعا داره و علیه آم مثال او و یاد ولی هر کتاب و سنت و سهیه مشهور درست بر تو زند باز تو متری لکن محل نظاره یقه و بسیر انقلاب و عین عمل آیا تأثیر میکنه بیاییم این بخشی که در از واقع شده فمن قاله لهو تغییر تخییرم فقط این خیالات من هم و من من هم نزاله و من قاله لهو حقیقتا اختبط و حل لهو تأثیرم فقط به حیث و غیر و نزاج نوع من الامراس اوینتهی ایلت احاله اصلاح احاله و ته و به اصطلاح امتلاح واخر میشه به حیث و یسیر و جمابه حیوان هم و مثلا به عکسی فلد یعنی الجمهور حوال اقوال که و لحبت طارفتون تون غلیتون الاسانی بعد ایشون میگه که با امکانه به نظر در خود از الگاهی تو اما به نظر به با انسان نه و نقل خطابی نقامل همین که و سم مطن ویشون می بیا که نوا ح قالین بر ن او تخیلون فقطقدر دا های مکار و قالا ماذریجمبور و لو ما و ن حقیقت بله. اون وقت دقت بکنیم و نقا بعضنا حقیقت او و و مایع او منه اله خیالات باطله این خیالاته خیالاته و هو محذور و لورود نقل به اثبات سه، چون در آیات کتاب و روایات واجبه سحر داریم و لان الاعادله یعنی اینا در بحث اثبات سه دو گنتی رو در نظر گرفتن یک قواعد در, در مغریب قرن خود خودشون که کلامیه. یکی از مواهص عدیلنا علی و لا عمل عقل لا ان الله قد یخر قلعاده این قد یخرق العاده کلام اشاره را که ممکن با نیریتن دیگر یاری عادت شده که معلول بر علت بشه ایشون میگه ان الله یخرق العاده اندنود به صاحب به کلام ملقب او ترکیب احسام او مزجن بین خو با ترتیب مخصوص بیون که این خدا خرق عادت بکنه آتش باشه اما نسوزانه این تفسیر یکی اقامه کردن و همون تفکر نفی ایلیت با نفی ایلیت دارن اشکال نداره قرب عادت کشه و این نشه و نذیر رو که ما من حضاق العطلبا ایشو میگه برمیاد یک عنصر تفیینی یه بنذر از که با شات و ماده رو میگن که این شات و ماده هر کدوم به تنهایی خطرناک اما وقتی با هم نزدیک میشن اون فنگ، اون ماده ممزوج اون خطر نداره وکیل خوب دقت لا یزید و تاثیر و سهم علو ماذکر الله تعالی فی قوله به المرض بین المرض و زوجه لکن المقام مقام تحویل شون ظاهر آیه در این مقامه که امر شهر رو بالا ببره فلوجاز ان یک ابیه اکثر من ذلک لذکر اون شفت من این زمینات که این مخالف اینجوری رفتشون یک کمی تو خونه دیگه بقیه گفت الفه گفتن چای احتیاض میگه ماذری چی گفت نه ها چی گفت بحث جری عادت اینا در حقیقت معنی شده یه بحث دیگه این که در سهر بوده این بوده که آیا سهر حقیقت داره یا نداره؟ این دو اگر حقیقت داشت تا حد تن انقلاب ماهیت یعنی هم پیش میره مثلا انسان رو حیوان بکنه حیوان رو انسان بکنه این ایشون میگه که اکثر میگن نمیشه این مطلب ببینید من چی میخونم این در کتاب مرمون تبرسی در کتاب احتجار یک حضیص مرسلی و از امام ساده رو داره. اون زندگی از امان سایل همین سایل میکنه همین بحثی بکنیم. هم یکی بلکتو با این, این سایل امان. و سرگیمون. هم. همین اون که انیجل انسان حیوانه. امان میفرم هوا اعجازان خیلی عجیب دقیقا همین بحثی که اینجا الان. همین بحثی که اینجا دقیقا مطرحه، این رو الان ما تو کتاب احتجاج. و دیگه که ما من صادق که یعنی انسان قادر‌تر از این است که این کارو بکنه. این کارو نمی‌تونه انجام بده. حسین خصوصاً البته می‌گه. مسئله این که اینه که تخیلات این یه حدی کمی قاردن که سر خیاجه. و کیاده. و این بحث از کردن بحث‌های جدیدی نیست. توی که رو هم جدید نیست. مثلا این کلام می‌کنیم آرویی معنیش نمی‌کنه. مثلا از اون زمان تا این دما مرموم و استاد هم آیدوی از روزی خیاده حالا این چی بوده چرا این را من چند بار را کردم بعد از آمدن قرآن و روایات و اینها اصولا در جامعه اسلامی یه ترت قوی این شد که ما کلیه معالقمون را از حیات و از زندگی و از وجود از قرآن و روایات میگیم کلیه اموری که نمید و امور شرقی نیست؟ شرقی و غیر شرقی کلن هست کردیم حتی گاغبار شده برای یک نظام اجتماعی هم برمیشتن به مقاییم دینی شما الان میدونیم یک مساقه 15 کیلومتر در شهر خارجوشی یا در یه 15 خروج تاکسی ممنون حد شهر رو با 15 کیلومتر با آخرین منازر اصامی کن در فقه اسلامی حد شهر رو ماید باقل اعظام اصامی کنه اضافه برقل اعظام ها یعنی وقتی می آمادن مخاطر اینها کجا شهره و شهره تمام شد اون حدیش رو از آنکنه یک تلسی کردن بین یک امر اجتماعی با امر دینی. دینیم این رو در نظر دسته باشیم در کلیه این ما این هست مثلا اما میگیم شهر و شهرستان رو مرکز روستان رو در مقابل روستان رو در اون زمان اگر شهری بزرگ بود جامعه شهری مخاطر شدن از طرف خلیفه اجازاز می شد که نماز جمعه بخونه خوب دقیقا یعنی وقتی منبر جمعه رو میوردن مشهده منبر سالات نماز این منبر نماز جمعه هست این رو از طرف دستگاه خلیفه و اصلا با مراسل میوردن و شهر به شهر شده تو اون ممکن بود کسی نماز جمعه بخونه اما منصوبه از خلیفه اون جایی بود که با شهر و دفتر ما هم آماده اگه کنیم مثلا دفتر ما داره که اقل نحضیدی که سن هر تا به جمعه پنجتا یا هفتا دفتر قرن سنت از اواره نه اوش چهلتا چیزای دیگه هم شده این یک نوع تلخیر بوده ما بین مفاهم دینی با مفاهم اجتماعی در مفاهم هم همینطوره ببینه هماشون بخصه اقری به علیمی شکلی شده رسول قانون علی و چون اشعلیه ایشان منکر ایموریت به رخص عادت و خرق عادت یعنی <تصفيق> <تصفيق> آمان تفسیر کرده که سه ممکن از واقعیت داشته باشه از واقع خرق عادت جریع عادت برینی که هر جا آتش باشه حرورت باشه اما یک جا خرق عادت میشه آتش هر حرورت میری یکی دستشون رو این بردن یکی بحثشون رو گردن روی روایات و رو عدله سمعی در میان میانه علماء بیشتر رو عدله سمعی رفتن اون هم اشکال در عدله سمعی چیه؟ در عدله سمعی اینه که در یکی قرآن داره یوخیل و علیه هم یوخیل و علیه هم سهره این خیالات خیال میتونه از این مارها راه را میرن هم البته همین رو در کتب علیه هم جام دارن اهل سنت هم دارن مفصلین هم نگوشتن که این صاحبه که از کلدان ها صاحبه کلدانی که از بابه چون شهر هله معروف به سیخ بود فرعون از نصفش از هله ایرام بابه سهره بردن اونجا مثل اینها با تناره هایی رو به شکل ما شکل زارش نقاشی کردن مثل ما سر رسولت و, و جمعه اینا تناب بود به این جیوه مانیده بودن یا به قول این روایت اقالیت عربی زعبخ یا زعبخ زعبخ زعبخ بشمارده بودن که جیوه در مقابل آفتام حرکت میکنه اینا شروع این به حرکت کردن یو خیلی علا ایلیه من سره خیال میکنن این نایه مطلب اهمیست شما جیوه رو به یک چی حرکت و اینا کلا استعداد در قدیم برای جیو آثار عجیبه اینا چه ای چیز فرضیه قری به اوهام و خیالات و خرافات اشتباهی نمی‌کنم، اوم مراجعه بونم. یک چیزهای عجیبه قلی درباره جیو در و جیو نوشته. یکی گوگل یکی جیو در صدر این یک آثار عجیبه ای داره که از اینی صوری نیست. در حال غلطم اینه که اینها با تمسو که به این آیه موسی وخیر ریلی همین سفر باز در جلیه هم داره که یو فرمونه دهی بین المرع و زوجه این یو فرمونه دهی بین و زوجه یعنی این محنوش واقعیست پس توشن شد که این بحث اینجایی سر واقعی یا واقعی نیست دو راه داشتن یه راه متکلمین بود که امکار اینیت بود جری آدت بود خرب آدت بود یک راه هم روایات و آیات بود. در آیان چون تا آرز آمن یکیش داره یو پردغون بینید بین المرعه و یکی یکیش داره یو من سهره ها. اینا منشه اخلاف شد روشن شده رو اروای شد راست مخوندن ازده آمدن شده یو خیلی دلویل ایمن سهره سر خیالی واقعی نیست خب اون یو پردغون بینید بین المرعه و چیه اونم رو خیالاته واقعی نیست یعنی ایجاد یک خیالاتی در ذهن طرف مقابل می کنه، صرف اون خیالات در ذهن ایجاد میشه. نه اینکه واقعا نه نس... دقت اون گفتن اونجا توی خربه گونه دیگه بین از برق و ذوگه با خیالات روشن شد یا روشن؟ ها، یہ جوامش این بود. من هی در میگم یک قول این بود که ما تفصیلش جمله رو قبول کنیم، نه به جمله اون تحصیل به جمعه برندازه این که جدایی بین زن و اما این که مثلا سرح بکنه یک ساختمان بیاد پایین سرح بکنه یک کسی مثلا حالش کردارش نه این مقدار، اون مقضایی که در برحان آمده رو جب سر همین مقدار را رو, رو بکنید یعنی در اینجا نه آمدن نه تحلیل فلسفی بدن نه تحلیل علمی بدن چون ممکنه خیلی از هایی که وجود داشته حالا ما برسون در درمن بخواب فقط تر برس بکنم خیلی از هایی که وجود داشته ممکن بوده واقعا تأثیر قبوه خیال باشه یکی از عجالیه بی که الان در علم به داره قبوه خیال انسان و تصرفاته قبوه خیال و حتی قبوه برسان کاری اینقدر قدیه قضی که انسان خیال میکنه اما ریب واقعی واقعی شده و واقعا هم آثار میگیره من یک گزارش دارم یکی از دکترهای آلمانی داشته که 70 درصد مریض هایی که من مراجعه کردن رو تغییر مریض مریض بود اما تغییری بود ایبراست هیچ چیزی از یعنی واقعا میلش کارایی کرده خیلی عجیبه واقعا مشکلی اما سبب نشده که کردو مریضه تو با تلقیزه دراكن این دین از بحث خرق عادت و جری عادت تا این عبارتی که بعضی هم دار میشینیم من با اینکه نمیخوام چوری میگم خواستم بگم وقتی ما پس در واقع یک مشکلی که تا اون زمان بود به جای اینکه یک تحلیل علمی بشه چون بعدن چند نمونه دیگه ارزم میکنم حالا ما هم همیشه داریم یواشواش در نیمه رجول میگیم به جای اینکه یک نوع تحلیل علمی رو چون من میگفتم یعنی این دکتوره میگه آقا خب به من مراجعه کرد میگه معده کاروستم میگه معدش کار نمیکنه آنال هضم و انجام نمی لکن اون عواملی که سبب میشه برای اینکه معده کارنکن داخلش وجود نداره اون عوامل طبیعی خاصه اصل معده بالا فرجند نشه اون عوامل طبیعی وجود نداره اما معده کار میکنه دقت کنید میگه 70 درصد مریض ها راندا برای ترقیم در بر اثر ترقیم و خיאان هی تربیه کرده به کار نمی کنه هیچ مشکلی نداره مردش کاملا سالمه کار نمیکنه کنه این یک فردمونه بی این که با خانم بوده میگه ممکنه واقعا هیچ نقطه هم نباشه یعنی مثلا با مثال ممکنه است یک سهلی کرده باشه که مثلا ایشون با خانمون خودش نتونه کار میکنه کنه اما فرصه این با زن دیگری به خب من یک گزارشی در نمیخوام خصوصیاتش رو کامل بگم مشابهی که مثلا منبر مثال مثلا مردی بوده حالا مثلا جایی بوده همین شخص مثلا در جایی بوده مثلا فرض کنید فرض مثال خانمی با لباس قرمز بوده منبر مثال این در اونجا با یک حیوانی هم روبرو شده یا یک کسی اون رو شلاق زده اگر خانم این نه هم همون لباس رو خوشه، این اون تصوره میکنه فقط میگم نمخوام پسه رو کامل نرویم خیلی مشبرش کرده چون کمی مناسب می دقیقی در چی مخوام بگم گامی میشه این یک تحلیل روانی داره به اصطلاح روز ما یک نوع حالت به اصطلاح سکولوژی و راجع به روانه تحلیل واقعا روانی نه اینکه این واقعا سحری شده و جدای شده از دنش گاهی وقت نکته علمی داره عاشن میکنه گاهی واقع مثلا این خانومرا می‌خواد با اون چیز بشه این یعنی مثلا در زمان بچگیش یک خانوم به این شک بوده موارن با اون یک امر بدی بوده که تا مثلا زمین خورده یا اون خانوم به این فر شده دختر جوان بوده به این فر شده یا شلاق خوریده این صورت در ذهن او مونده. یا گاهی ممکن است با تقدیم ایجاد یک سوره اگه مقبول بکنه این نکته را برو شیشه خطر پس ممکن است ما بگیم یفرقون بین بینر و زوجه اما این یفرقون بین بینر مرع الزوجیه لازمی حتما سر باشه یک امر واقعی است که بر اثر تعلیم بر اثر حالت روانی برای فرد پیدا میشه که نسبت به زن زندگی این حالت نداره اما نسبت به خانم خودش این حالت داره این هم در اهمی ثابت ها از این همه آیه استاد و نازمی این جور کامل شرح ندادن اشون فقط این سرشیار و واقعیت ندادن که الان نقلی کردن ما اینشالله عرض میکنیم این بحث توی اینم آمده تو وقت اینم میخونم یک میاقی داشت مدین که آیا چشمه هفت جایی که میایی چشم زه و از فرقنبر روازن اینو حق با. میکنیم که دی از واسی کردهی مثل جبالی اینا مثررت ده که شش واقعیت خات ولی این در که کردن این رو حق ح در یک رواض داره که, که, حت که بهش شطور رو درگیر میکنه و انصال در قبول میکنه. اون آمده گفتن نه عین حرف نیست. اونجا هم همین شه، یکیش اینه که مثلا آیا روایت قبول بکن یا نه یعنی این برفر و تصویر علمی بکنید تصویر علمی شینی که واضی میگه اجزاء لطیفه یا از عین چشم انسان خارج میشه و چطور میشین این لطیفه در جوهر غیرا تاثیر بگذاره تحلیل قدیمی‌ها این گوسفند دارین که عین حق نیست میخونم اینجا هم شما نگاه करिए هم تحلیل کلامی دادن به جوی تحلیل علمی و فلسفی هم تحلیل نقلی دادن برای آیات و مبارکه پس یک بحثی که ما از این بحثش که این حقیانه اون قسمتی که علاقه سهر, سهر یات اون مقدار شما داریم که سهر تا اون درجه نمیاد که آدم رو سر بکنه سر و حقوق بکنه تقییر ماهیت نمیاد اما در میانه و ما در میانه علمای ما این مفرح شد که آیا این حقش سهر حقست یا شیالا این هم یه بحث دیگری که در سه مطرحه بحث خیلی اساسی تری که در سه مطرحه تشکیف موضوع سه راستم اصلا سه دریفتاً چیه؟ در این کتابی الان من از کن که حدود در سال یکی از اهل سنت درشت فتول باری ایشون حدود سه معنا برای سه کرده که ید این همه یه بحث ها بوده این بحث موضوعی و که عسكر از در این جنب محبوب شیخ انصاری عبارات بهار رو آورده آقایان هم همین کارو کردن بهار در بهار به نقل اول از میشابوری تفسیر میشابوری 8 صفحه گردو در اصل پس ما در حدود بحث های ما در سر چی هستند او چی بحث ابهازی و در سر بحث دیگری که است بحث موضوعی که فرنا هم اشاراتی می کنیم بحث نهایی هم اینکه آیا عدله فهری که داریم آیا صحیح هست یا نه که.